خب خلیجی که از مخاطبان برنامه پرسیده با توجه بین که شما دارید زندگی نامه ی آقای خامنی رو می نویسید چه چیزی در مورد ایشون وجود داره که ما نمی اگر بخواید به یک چیز اشاره بکنید؟ به یک مسئله خب طبیعتا من نباید این بگم ولی <تصحیح> <تصحیح> خواستن که بگی... <تصحیح> آره بخاطر این که نکته که من بهش رسیدم خب جالب ترینی که منتشر بشه در ولی من میتونم یک نکته رو بگم در اون چیزی که برای من جالبه در مورد آقای خامنه ای و من سعی میکنم در این کتاب اون رو شعرم بدم و اون این هست که آقای خامنه ای محصول یک سیستم هست محصول یک مجموعه ای از روابط و مناسبات هست یک فرد نیست و چه بسا هر کس دیگری جای آقای خامنه ای بود کما بیش ما با همچنین رهبری که الان داریم مواجه بودیم یعنی که آقای خامنه ای یه بخشش وامدار خب گذشتهش کودکیش، نوجوانیش، سابقش، محیطش هست پیش از انقلاب ولی یه بخش بسیار مهمش محصول اون سیستم سیاسیست که بعد از انقلاب در ایران به بودود اومده و همینطور یک است از بسیاری از چیزهایی که ما هم درش شریک هستیم او از درون روابط و مناسباتی بیرون اومده که ما هم درون اون روابط و مناسبات وجود داریم بنابراین این کتاب من سعی میکنم درباره فقط یک شخص ننویسم درباره این هست که چگونه آقای خامنه ای جمهوری اسلامی رو شکل داد و چگونه جمهوری اسلامی آقای خامنه ای رو شکل داد یعنی این تعامل یا این،, این تاثیر متقابلی که بین یک فرد و روابط و مناسبات پیرامونش هست و این خیلی مهم هست که بدونیم که مسئله شخص آقای خامنه ای نیست مسئله شناخت اون روابط و مناسبات هست و اگر ما تمام حواسمون و توجهمون متمرکز بشه به یک شخص بدون اون که این روابط و مناسبات رو بشناسیم میتونیم در آینده شاهده این باشیم که یک شخص دیگری دوباره از درون این روابط و مناسبات بیرون بیاد که شبیه همون شخصی بوده که ما داشتیم باش مبارزه میکردیم در حقیقت یا ما اون رو بد میدونستیم این یه نکته خیلی مهمه من آقای خامنه ای رو یک فرد برخلاف آقای خمینی یک فرد استثناایی نمی بینم. آدمیست میان ماه کمابی شبیه اکثر آدمهای دیگه است. برخلاف آقای خامنه‌ای که یک آدم استثنایی بود این خیلی جالبه که آدم ببینید که یک آدم میان مایه چگونه اینطور از نردبان قدرت بالا میره یکی دیگر از مخاطبان ما پرسیده که نمیدونم آیا شما به این سوال قبلا جواب دادید یا نه ولی میخواد بدونه که شما آه... چی شد که تصمیم گرفتید لباس روحانیت رو بذارید کنار و لباس شخصی رو پوشید و کار تحقیق بپردازید من لباس روحانی نپوشیدم آه... و هیچوک شغل روحانگری نداشتم در حقیقت یعنی لباس روحانی رو به عنوان لباسی که انتخاب بکنم نفوشیدم بله بفر... حوضه رفتید بله مدت طولانی حوضه رفتم داستان این که بیرون آمدم یک داستان مفصل تصمیم. طبیعتا تصمیم یک شبه نبوده و مجموعه ای از اتفاقات باعث شد که به تدریج یعنی شبیه این میمونه که شما با یک نفر ازدواج کنین و بعد از شما بپرسن که چجور شد طلاق گرفتین. اون طلاق یک پروسه دیگه از یک موقع شروع میشه اول شما تصمیم نداریم طلاق بگیرین ولی یک اتفاقاتی پشت سر هم شما رو میکشونه به این تصمیم که از اونجا جدا بشین. الان یکی دیگر پرسید یکی دیگر مخاطبان پرسید الان وقتی به خودتون در حوزه و بعد از سالها در امریکا نگاه میکنید فکر میکنید که مهمترین تغییری که در شما ایجاد شده چه شد زمینه‌ای بوده مهمترین تغییری که در من ایجاد شده اینه که من خیلی انتقادی نگاه میکنم به بسیاری از چیزها اقتدارهای مقدس برای من شکستن حالا این اقتدار مقدس فقط دین نیست یا اقتدار های دینی نیست بلکه اقتدار های حتی زنینی این که راحت میتونم پرسش کنم در حقیقت پرسش کردن رو یاد گرفتم اون چیزی که طی این سال ها من آموختم اینه که پرسش ها مهمتر از جواب ها هستن و تلاش بیشتر برای است که میتونه انسان اندیشیدن رو یاد بده و در نهایت یک چیز هم که من یاد گرفتم اینه که آدم ها خیلی مهمتر از افتار و اندیشه هاشون هستن و هر اندیشهی که وجود واقعی آدم ها رو در نظر نگیره و در پی باشه که آدم های واقعی رو قربانی اندیشه های انتظاری بکنه بسیار خطرناکه یکی از چنوندگان دیگر اون پرسیده جناب خلجی که به نظر شما تعالیم حوزوی با موضوعاتی مثل مساواد و برابری و اینها اصلا همخانی داره و یا نه و این تعالیم چقدر روی روحیات و رفتار شخصی اجتماعی سیاسی افرادی که مثلا میرن نوانده معلیلس میشنن اینا یا قوه قضایی اونجا یا مثلا قاضی میشن تو قوه قضایی تأثیر, تاثیر میذاره یا نه قطعا مثلا ببینید در نظام فکری هوزوی مفهومی به نام برابری وجود نداره برابری یک مفهوم کاملا جدید هست در نظام هوزوی اگر منظور همون فقه باشه فقه استوار بر تبعیض هست استوار بر نابرابریه نابرابریه بین زن و مرد نابرابریه میان مسلمان و غیر مسلمان نابرابریه بین شیعه و سنی نابرابریه بین فرد بالق و کودک نابرابریه بین فرد آقل و مجنون نابرابریه بین فرد برده و فرد آزاد نابرابری بین زن مخصوصا زن آزاد و زن که کنیز هست نابرابری بین فقیه و غیر فقیه نابرابری بین حاکم و محکوم مجموعه از نابرابریه ها هست که تارپود فقه رو و شریعت رو میبافه و بنابراین به همین در لحظ که شما امروز دیدین آقای یزدی اینجور توهینامیز در مورد نامزدهای زن ریاست جمهوری صحبت میکنه اینها نمیتونن تصور بکنن که چگونه میشه زن و برابر باشن. بنابراین در حوزه رو خیلی به طور مشهود و محسوس میبینیم که شکلی که اینها به کافران نگاه میکنن شکلی که به سنی ها نگاه میکنن شکلی که به عقلیت های جنسی نگاه میکنن شکلی که به زنان نگاه میکنن کاملا استواره بر اقتدار مذهبی، جنسیتی و فرقه ای است و به همین دلیل همه هست که اینها نمیتونن حقوق بشر رو به مفهومی که ما در آغازش صحبت میکنیم بپذیرن. آخ الخليجی یکی از مخاطبان برنامه از یکی از مقالات شما سوال داره. مقاله آیت الله ها درباره سیاست چه می ایشان از طرف شما نقل قول کرده که شما گفتید جمهوری اسلامی تنها بهشت قابل تصور روحانیت هست و سوالشون اینه که با این وضعیت چطور روحانیان تن به خواسته مردم خواهند ام، یه بخشش این هست که خودشون رو غیر سیاسی ام، ام، نشون بدن کاری که آقای سیستانی میکنه و اونا که اسم خودشون رو روحانیت و سنت میگذرن میگن که ما به سیاست کاری نداریم در حالی که این رویکرد بسیار ریاکارانه است به خاطر اینکه اونها از سیاست بسیار نفر میبرن از سیاست موجود ایران بسیار نفر میبرن از جمهوری اسلامی بسیار سود میبرن آقای وحید خوراستانی و آقای سیستانی و بقیه کسانی که خودشون رو مراجع سنتی مینامن ولی به مردم میگن ما سیاسی نیستیم ما حکومتی نیستیم و اونچه که در عرصه حکومت میگذره خوب یا بد به ما رفتی نداره ولی در دلشون بسیار نگرانن این نگرانی دارن که وجهشون و اعتبارشون به خاطر رفتار به جمهوری اسلامی محدوش نشه اما از نظر اقتصادی این نکته خیلی مهم هست که در نظر بگیرید روحانیت امروزه برخلاف روحانیت چل سال پیش یا پیش تا پیش از انقلاب چندان به وجوهات شرعی مردم بابسته نیست یعنی که پیش از انقلاب روحانیت یا مراجع تقوید مهمترین و عصبیترین منبع در آمدشون رجوعات شهری خمس و زکات بود الان روحانیت بیزنس میکنه الان روحانیت تجارت میکنه الان روحانیت در صادرات و واردات و کارخانجات و اینها فعال هست فروشند است میفروش بازرگانی میکنه و این تا اندازه روحانیت رو از منابع مردمی مستقنی میکنه بی نیاز میکنه اما این مشکل وجه و اعتبار حل میکنه و به هر حال روحانیت این مشکل رو داره اما مسئله اصلی هست که بدیل جمهوری اسلامی برای روحانیت چیه؟ بدیل جمهوری اسلامی برای روحانیت یا یک حکومت نظامی به دست سپاه پاسداران هست یا یک حکومت سکولار عرفی و دموکراتیک هست در هر دوی این بدیل ها روحانیت چندان جارگاه ریجه ای نخواهد داشت و به احتمال زیاد همه این مذایب و امتیازهای انحساری رو از دست خواهد داد بنابراین میشه گفت که جمهوری اسلامی تنها بهشت قابل تصور روحانیت شما در مقاله ای به نام سیاست سنتی و سنت سیاسی گفتید که تغییر سیاسی در ایران نه از طریق انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی که از رای تقیه بر نیروهای اجتماعی به وسیله همه سویی آنها صورت میپذیرد اصلاح طلبان با چانه زنی با رهبر جمهوری اسلامی قدرت نمی‌آوند. قدرتی که وامدار او باشد با اشارت او از میان میرود. حالا چطور معتقدید جناب خلیجی که باید مثلا به هاشمی یا هر کسی رای داد با توجه به این؟ خوب خوب دلیل اینکه خب خیلی روشنه به اینکه هاشمی میتونه بخش زیادی از مردم رو بسیج بکنه و در این حال ما میدونیم که آقای هاشمی قدرتش از آقای خامنی نمیگیره و این آقای خامنی نیست که به اون قدرت میده و آقای ما میدونیم که آقای خامنی اصلا دوست نداشته که آقای هاشمی نامزد بشه و نامزدی آقای درست به این دلیل باید از آقای هاشمی حمایت کرد که نامزدی آقای هاشمی برای آقای خامنه مشکل و بحران ایجاد میکنه یعنی به همون دلیلی که به موسعی بد رعی میداد و همون دلیلی که باید به ما در سال 76 رعی دادیم به دلیل اینکه اینها میتونن بخش عمده ای از نیروی اجتماعی رو بسیج بکنن و کسی دیگه جز اونها نمیتونه در شرط موجود این کار رو انجام بده از اون طرف اینها نرفتن با چانه زنی و التماس از رهبر در حقیقت تأیید او رو بگیرن و نامزد رهبر نیستن در حقیقت نامزدی در مقابل نامزده رهبر هستند. این میتونه شکاف در درون حاکمیت رو گسترده تر و امیقتر بکنه شکاف در درون حاکمیت یکی از مهمترین راه برای تغییر سیاسی هست یعنی در خیابون در عرصه جامعه ما یک مردم بسیج شده و سازماندهی شده رو داشته باشیم از اون طرف در درون حاکمیت ترکها ها و گسست های بسیار عمیق و به طور فضاینده امیق شمنده و ترکیب این دو میتونه راه رو باز بکنه به سوی امکان های تازه وگرنه اگر آقای هاشمی کسی بود که رفته بود با آقای خامنه ساخته بود یا اگر ما فکر میکردیم آقای هاشمی رفته با آقای خامنه ساخته و در حقیقت با تعیید و رضایت آقای, حاش... آقای خامنه ای وارد عرصه انتخابات شده طبیعی است که اون موقع حمایت از آقای هاشمی هیچ معنا نداشت و نمیتونست به تغییر سیاسی منجر بشه جناب خراجی یکی از مختووان برنامه پرسیده که به نظر شما چه چیزهایی است که مقامات ایرانی در مورد آمریکا نمیفهمند تقریبا همه چیز یکی اینکه قانون اساسی آمریکا رو اصلا نمیفهمند و این مشکل خیلی خیلی های دیگه هم هست در دنیا مسئله آزادی بیان رو اصلا نمیفهمند مسلهیه حق آزادی شهروندان برای داشتن ادیان مختلف برای داشتن حقوق مختلف اصلا نمیفهمن مسئله رسانه در آمریکا رو اصلا نمیفهمن پیچیدگی های فرایند تصمیم گیری سیاسی در دولت و ارتباط اون با کنگره رو اصلا نمیفهمن یک تصویر کاملا یک دست یک نواخت و غیر واقعی از قدرت آمریکا دارند نمیدونن نقطه ضعف های دولت آمریکا کجاست و نقاط قوتش کجاست به دلیل اینکه نقاط ضعفشون نمیدونن خیلی مقاه تصورشون از قدرت آمریکا بیش از واقعیت و به دلیل اینکه نقطه های قوتششون نمیدونن خیلی مقعه قدرت دولت آمریکا رو دست به کم می گیرند و همینطور تصوری از کوچک بودن دولت در آمریکا ندارن و اینکه اونچه که ما اینجا می‌بینیم کراس‌روت دموکراسی و اینکه چگونه دموکراسی در آمریکا به وجود اومده و چگونه این دموکراسی در کار میکنه فعال هست این تصورات ندارن و نمی‌شناسن و بیشتر یک تصویر ایدئولوژیک دارن از آمریکا تا تصویری که مبتنی بر شناخت دقیق باشه به همین دلیل هست که ایران میتونست در دولت ایران دولت جمهوری اسلامی در فرصت های گوناگون میتونست استفاده بکنه برای بهبود رابطه با آمریکا ولی ظاهراً نیازمند این هستن که یک تصویر ایدئولوژیک داشته باشن تا اینکه که حکومت خودشون رو ادامه بدن متاسفانه هویت جمهوری اسلامی پیوند برقرار, برقرار کرده با یک تصویر غیر واقعی داشتن از آمریکا و مبارسه با اون دشمن خیالی بعد سوالم رو برعکس میکردم و میپرسیدم چه چیزیست که میفهمند شاید اونجوری شما جواب کتا تری میداشتید. ولی شما در میان سیاست مداران ایرانی کدوم رو نزدیک میبینید جناب خلجی که بفهمند سیاست خارجی و سیاست جهانی رو و خلاصی سیاست غرب رو و بتونند به بشینند سری میز مذاکره و با زبان نوع سیاسی الان دنیا با سیاست مداران غرب مزاکره کنند و صحبت کنند. کسی رو میشنسید شما در میان کسانی که در ایران کار سیاسی میکنند بتونه این کار رو انجام بده ببینید طبیعتا تیم آقای یعنی دیپلومات های که با آقای رفتنجانی و آقای خاتمی کار می بیش از دیپلومات های که با آقای خامنه ای کار می با زبان دیپلوماتی و عرف بین الملل آشنا هستن ولی مشکل اینه که اونهای که در جمهوری اسلامی تصمیم می گیرن آدرست اونها آقای خامنه ای اساساً اعتقاد به عرف بین الملل و دیپلوماسی ندارن به عبارت دیگه اونها که قدرت دارن دیپلماسی بلد نیستن و اونایی که دیپلماسی بلدن قدرت ندارن جناب خلیل یکی از مخاطبان این برنامه از شما سوال کرده چه کاری رو الان دوست دارید انجام بدید که به دلایلی انجام نمیدید فقط تمرکز کردن روی نوشتن رمان و اینکه آخرین کتابی که خوندید چی بود جناب خلیل آخرین کتابی که من خوندم به فارسی و به انگلیسی می توانید حدثشو بگید آخرین کتابی که من به انگلیسی خوندم کتاب در حقیقت یک درامدی بر پدیدارشناسی بود و آخرین کتابی که به فارسی خوندم آخرین کتابی که به فارسی خوندم یک بار دیگه کتاب آقای آجدانی تا این قد ایرانی یک مشروط. بار دیگه ماشود. ماشود ایرانی مشروط ایرانی آقای آجدانی رو برات بار دوم خوندم.